زور افسون برنامه از گروه جوان و فرهنگ به نام خدا خدایی که مهر آفرید سلام ادبیات آمیانه که افسانهها ها بخشی مهم و ارزشمند از اون رو به خودشون اختصاص دادن روایات تلخ و شیرین زندگی که به زبان مردم بیان میشن و به همین علت در مردم شناسی جایگاه ویجهی دارن افسانهها ها راه دراز زمانه ها رو سینه به سینه طی می کنند و در خود حکمت ها و اندرزهای ارزشمندی را نهفته دارند افسانه ایرانی آبجی قورباغه را تقدیم می کنیم برگرفته از کتاب قصه های مردم به روایت خانم توران فرهنگ از سنندج و به گردآوری پژوهشگران پژوهشکده مردم شناسی سازمان میراث فرهنگی به انتخاب و ویرایش سید احمد وکیلیان روزی روزگاری در زمانهای قدیم مرد فقیری بود که از بدشانسی یا شاید شایدم خوششانسی زن ساده لح و ابلهی نصیبه شده بود روزی از روزها مرد مقداری پشم گوسفند به خونه آورد و به زنش داد که اونا رو بریسه تا شاید با فروش نخها کمک خرجی برای دخل همیشه خالیشون پیدا کنه زن ابله همین که چشم شوهرش رو دور دید پشما رو برداشت و به آبگیری که در نزدیکی خونشون بود برد و خطاب به قرباقه که در آب برکه قورشون به هوا بلند بود گفت سلام دختر خاله های عزیز این پشما رو بگیرین و اونا را تا فردا برام دوک کنین و بریسین و بعد بلافاصله تمام تموم رو توی آبگیر ریخت و به خونه برگشت فردای اون روز وقتی زن رفت سراغ قورباغه ها دید آبگیر خوش شده و از قورباغه ها هم خبری نیست که نیست. زن به خیال اینکه ها یا به قول خودش دختر هاش به اون کلک زده و رو برداشته و فرار کردن با ناراحتی و عصبانیت گفت ای دختر خاله های بدجنس الان درسی بهتون میدم که تا آم دارین یادتون نره. به بعد به خونش برگشت و چند لحظه بعد در حالی که کلنگی در دست داشت به جان کف خشک آبگیر افتاد و اونجا رو کند و کند تا اینکه یه خشت طلا از زیر خاک بیرون افتاد زن با دیدن خشت طلا با خوشحالی گفت ای گرباقه های بدجنس دیدین دیدین دیدین که من انتقام خوبی از شما گرفتن دیدین خونتون رو خراب و داغون کردم الانم این خشت با خودم میبرم تا دیگه هیچ وقت نتونین دوباره خونتون رو بسازین زن این رو گفت و خشت طلا رو برداشت و به طرف خونش برافتا شب وقتی مرد به خون اومد دید که یه خشت طلا یه حیات گذاشته شده فورا اونو برداشت و با خودش به اتاق برد و با تعجب پرسید زن این خشت طلا مال چیه؟ اینجا چیکار میکنه ها زن با ناراحتی تمام ماجرا رو برای شوهرش بازگو کرد مرد که از یافتن خشت طلا حسابی خوشحال شده بود به زنش گفت پشو رو بردن فدای سرت در عوض ما صاحب خشن تلا شدیم وقتی رمزون اومد اونو میفروشیمش می و به زخم زندگی اون میزنیم فردای اون شب مرد دورگردی که خورد ریزایی مثل الانگو و گوشواری بدلی میفروخت توی کوچه پیدا شد و با صدای بلند میگفت آهای زنای با سلیقه. بیاین بیاین الانگوهای قچنگ دارم انگشتری های بی‌نظی آوردم چه برقی چه نگینی بیا که امورم زول اومده بیا زن ساده لو به محض شنیدن صدای مرد دورگرد خشت طلا رو برداشت و رفت و کوچه مرد دورگرد با دیدن خشت تلا توی دستای زن با دستپاچگی گفت الانگو هر هرچی میخوایی بردار اینو توست داری؟ میبینی چه نگین قشنگی داره؟ و انگشتری رو با نگین های رنگا رنگ به زن نشون داد و منتظر جواب زن سادلوه گفت من من با رمزون کار دارم انگوشتر میخوام چیکار مرد دورگر در حالی که هنوز چشمش به خش توی دست زن بود گفت رمزون؟ خب خب چیکارش داری ها زن گفت شوهرم گفته وقتی رمزون اومد این خشت طلا رو میفروشیم حالا اومدم که مرد دورگرد با خوشحالی توی حرف زن پرید و گفت رمزون رمزون رمزون گوری روت آبجی من خود خود رمزونم زن با خوشحالی گفت راست میگی تو رمزونی مرد دورگرد گفت البته که خودمم حالا حالا این خشت تلا رو چند میفرشه ابجی ها؟ زن نمیدونست چی بگه خشت تلا رو به مرد دورگرد داد و در قبال اون باد آورده مشتی خورد ریز بی گرفت و رازی و خوشحال به خونه برد وقتی شوهر زن ابله به خونه اومد دید که زنش گوشواره و علنگو و انگوشتری به خودش آویخته با تعجب گفت زن اینا رو از کجا وردی ها؟ زن هم با غرور حج تمامتر جواب داد اینا رو رمزون به من داد همونی که گفتی وقتی اومد خشت طلا رو میفروشیم مرد که فهمید زن ساده و ابلهش چه دستگلی به آب داده آه از نهادش بلند شد و با عصبانیت گفت تو تو زن ابلهی هستی من دیگه تحمل تو و کارای احمقانت رو ندارم تو دیگه برای من زن نمیشی یاله یالله یالله پاشو باره بیرون که چشم دیگه بهت نیفته پاشو زن در حالی که نمیدونست شوهرش چرا از فروختن خش طلا اینقدر ناراحت و عصبانی شده با سادگیه تمون گفت که خودت نگفتی وقتی رمزون اومد اون خشت طلا رو میفروشیم ها؟ خب رمزون اومد و منم مرد فریاد کشید برا بیرون دیگه نمیخوام ببینمت. برا بگر زن که سخت ترسیده بود با شتاب از خونه بیرون رفت زن رفت و رفت تا به خرابه رسید، گوشه کس کرد، در این موقع صدای میو میوی گربه ای رو شنید زن سادله گفت، گربه فوزول، میدونم، میدونم که شوهرم تو رو به دنبال من فرستاده تا به خونه برگردم گربه میو میویی کرد و به زن خیره شد، زن ادامه داد، برو، برو، برو اش بگو کور خوندی من دیگه پامو توی اون خونه خراب شده نمیذارم و بعد قرولون کنن زیر لب گفت خودش گفت وقتی رمزون اومد خشت طلا رو میفروش بد کردم به حرفت گوش دادم و اون خشت فروختن فروخدم بشکنه بشکنه این دست که نمک نداره زن همینطور که داشت با خودش حرف میزد صدایی شنید گوش تیز کرد این دفعه صدای او اوی سگی به گوشش رسید زن پوز خندی زد و گفت <تصفيق> این دفعه دیگه این سگ بیچاره رو فرستاده <تصفيق> سگ به زن نزدیک شد زن ساد لح گفت ای سگ فضول میدونم میدونم که شوهرم تو رو دنبال من فرستاده تا به خونه برگرده نه برو برو بش بگو اونقد احمق و ساده نیستم که پامو بذارم تو اون خونه خراب شده برو سگ چرخی زدو و از اونجا دور شد زن هم دوباره به عالم خودش برگشت زن هنوز توی خراب نشسته بود و با خودش گرلون میکرد این بار صدای زنگ شطوری رو که به خراب قدم میذاش به گوشش رسید زن پوزخندی زده گفت سلام آبجی هیچی نگو هیچی نگو میدونم میدونم میدونم که شوهرم تو رو دنبال من فرستاده. میدونم میدونم که مثل سگ پشیمون شده باش باش باش روی تو رو زمین نمیذارم و باد میام ولی ولی از قول من بهش بگو اگه یه دفعه دیگه منو از خونه بیرون کنید میرم و دیگه برنمیگردم حالا بفرم بفرم بریم که داره شب میشه بعد افسار و شطر رو به دست گرفت و به طرف خونه به راه افتاد وقتی به در خونه رسیدن زن آروم در رو باز کرد شوهرش از دیدن شطر و محموله بزرگی که بر پشتش بسته بودن دستپاچه از جا بلند شد و فورا در حیاط رو بست و بار از شطور برداشت بله دید عجب توفه خداداد با ارزشی برش رسیده بار شطر همه طلا و جواهرات بود و سکه های قیمتی حالا تو نگو این شطر غروب از غافل جامونده و متعلق به شاهه مرد نمیدونست با این همه تلاو و جواهر و سکه چه کنه فکر کرد و فکر کرد تا بالاخره به این نتیجه رسید که بهتر اونا رو وسط باغچه زیر خاک دفن کنه بعد برای رد گم کردن فورا شطر رو هم کشت و با گوشت اون قرمه مفصلی درست کرد حالا بشنوین از پادشا بعد پادشاه که از گم شدن شطورش با اون همه طلا و جواهر و سکه سخت ناراحت بود، پیرزنی رو مأمور کرد که توی کوچههای شهر دوره بیفته و به بهانه اینکه دخترش ویار گوشت شطور داره، به در های مردم شهر بره تا شاید دزد جواهراتش رو به این وسیله پیدا کنه. پیرزن وقتی به در خانه زن ابله و صادلو رسید و گوشت شتور خواست زن فوراً به مطبخ رفت و کاسی بزرگ از قورمه گوشت شتور پر کرد و به پیرزن داد از این طرف مردم که به کار و عقل زنش اطمینان نداشت دم به ساعت به خونه میومد و سرغوش یاب میداد. در این موقع هم سر به زنگاه رسید و قبل از اینکه پیرزن پاشا از خونشون بیرون بذاره اونو با بحانه به حیات برد و اونو توی چاه خونش انداخت پادشاه تا فردا سب کرد به وقتی دید خبری از پیرزن نشده مأموران تجسس رو به سراغش فرستاد. اونا هم ردون رو گرفتن تا به خونه زن سادلوه رسیدن. مأمور پادشاه از زن پرسید ای زن تو پیرزنی به این شکل و شمایل ندیدی؟ زن سادلوه با هیجان گفت همونی که گوشت شطور میخواست بیچاره دخترش ویار داشت. معمور پادشاه سری تکون داد و گفت درسته همون پیری زن رو میگم تو اونو دیدی؟ زن سادلوه گفت آره آره الان توی چاه آبه اونجا توی حیات معمور پادشاه با تحجب گفت چاه آب؟ تو مطمئنی؟ زن خنده کرد و گفت <تصفيق> البته که مطمئنم شوهرم اونو انداخته توی چاه آب کاسه ی... قرمش رو هم با خودش برد توی چاه آب معمور پادشاه هم بدون معطلی به سراغ شوهر زن سادلوه به بازار رفتند و اونو بازور و دست بسته به قصر پادشاه بردند مرد همه چیز رو کرد و گفت قربان قربان زن من دیوونه است باور کنین عقل درست و حسابی نداره اگه باور ندارین کسی رو همراه من بفرستین تا به شما ثابت کنم پادشاه پذیرفت و مرد رو با مأموران به خونش فرستاد زن با دیدن شوهرش گفت اومدی گرمه شطور بخوری؟ اینا دیگه کین؟ مهمون آوردی؟ مرد با عصبانیت گفت ساکت باش زن دیونه احمق هرچی میکشم از دست تو و کارها و حرفای احمقانت میکشم بعد رو کرد به مأمورای پادشاه و گفت میبینین؟ عقل درست و حسابی نداره بعد رو کرد به زنش و گفت زن اون پشمایی که برد خریدم چیکار کردی ها؟ زن به گفت اونا رو دادم دخترخالی غرباقه که بریسه ولی اون پشما رو برداشت و فرار کرد مرد پرسید خب خشت طلا رو چیکار کردی ها؟ زن جواب داد اونو به رمزون دادم الانگو و انگوشتر گرفتم ببین یکیشون هنوز دو دستمه آه چه خط بر میزنه بخندید. خندید ممورای پادشاه به همدیگه نگاه کردن مرد برسید خب حالا بگو ببینم اون شب که من از خونه بیرونت کردم بعد رو کرد به مموران پادشاه و گفت طاقت ابلهی و ساده لوهی اونو نداشتم از خونه بیرونش کردم ممورای پادشاه چیزی نگفتند و مرد دوباره از زنش پرسید: اون شب، اون شب چه کسی دنبالت اومد که بیایی خونه ها؟ زن مکسی کرد و گفت خب، او او خانوم و باجی میو میو و آبجی شطره خودتون رو فرستادی بودی دنبالم؟ مرد به مأموران پادشا گفت ملاحظه کردین، حالا صبر کنین یه نمونه یه دیگر رو هم ببینین تا بیشتر به کارای زن من ایمان بیارین بعد رو به زنش کرد و گفت زن من میرم بازار تو مواظبت در خونه باش زن گفت ای به چشم اصلا نگران نباش و مرد به همراه مأموران پادشاه به طرف بازار برافت مرد به همراه معمولان پادشاه ساعتی بعد به طرف خونه به راه افتادن توی راه زن رو دیدن که در خونه رو به دوش گرفته و نفس نفس زنان داره میاد مرد با دیدن زنش سری تکون داد و به معمولای پادشاه گفت می‌بینی؟ اینم یکی از شاکارهای زنم و بعد از زنش پرسید ای زنه کم اخت چرا لنگه در حیاتو به دوش گرفتی زن جواب داد مگه تو نگفتی ما در خونه باش منم با کلنگ تموم خونه رو خراب کردم و خشتاب و وسایل زندگیمون رو زیر خاک قایم کردم تا کسی اونارو رو ندازده در حیات رو هم به کولم گرفتم و دنبال تو اومدم تا ببینم چرا از بازار دیر اومدی راستی اونجا چه خبر بود؟ رمزون الانگو فروش رو ندیدی؟ ماموران پادشاه که تا این لحظه سکوت کرده بودند دیگه نتونستند خودشون خودشونو بگیرن و از کارهای احمقانی زن به خنده افتادند حالا نخند کی بخند بعد هم به قصر برگشتن و تمام ماجرا رو برای پادشاه تعریف کردن پادشاه هم از شنیدن کارهای احمقانه زن گاه گاه خندید و دستور داد دیگه کسی مزاحم مرد نشه چرا که پادشاه هم به دیوونگی زن یقین پیدا کرده مرد هم فوراً تمام طلاهایی رو که در باغچه دف کرده بود بیرون آورد و اون شهر رو ترک کرد. رفت تا دور از زن دیونش زندگی تازه ای رو شروع کنه. راستی، تا یادم نرفته بگم که مرد پیرزن رو هم از چاه آب بیرون آورد و مقداری سکه و جواهر به عنوان حق و سکوت به اون داد. سنی ایرانی آبجقور باقر رو براتون نقل کردم برگرفته از کتابق های مردم به روایت خانم توران فرهنگ از سنندج گردآوری پژوهشگران مردم شناسی سازمان میراث فرهنگی به انتخاب و ویرایش سید احمد وکیلیان هزار افسان کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت صالح ویراستار سهیلا کریمی اجرا مهران دوستی صدا هدیه سیفی کار تقی کننده زهرا عبدالله صادق تا افسانه دیگر بدرو.